افتر سلطان گل پیدا شد از طرف چمن مقدمش یارب مبارک باد بر سر و سمن خوش به جای خیشتن بود این نشست خسروی تا نشیند هر کسی اکنون به جای خیشتن خاتم جم را بشارت ده به حسن خاتمت کسم اعظم کرد از او کتا دست احرمن تا عبد معمور باد این خانه از خاک درش هر نفس با بوی رحمان میوزد باد یمن شوکت پور پشنگ و تیغ آلمگیر او در همه شهنامه ها شد داستان انجمن خنگ چوگانی گه چرخت رام شد در زیر زین شه سوارا چون به میدان آمدی گویی بزن جویبار ملک را او به روان شمشیر توست تو درخت عدر بن شان به یک بکن بعد از این نش گفت اگر با نکت خلق خوشت خیزد از صحرای ایزج نافه مشک خوتن کوشگیران انتظار جلوه خوش میکنند بر شکن طرف کلاه و برقه از رخ برفکن مشورت با عقل کردم گفت حافظ می بنوش ساغیا می ده به قول مستشار معتمن ای سبا بر ساغی بزم اطابک عرض دار تا از آن جام زرفشان ای بخشد به من